اللهم الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي والصلاه والسلام على سيدنا محمد بلکش بر بل که وجوب مواقعات انتظامیه ثابت یا ثابت نیست این جمله قاعده به وجوب هم مشهور قاعده به وجوب غیری و غیر مشهور قاعده به وجوب نفسی هم. و خودش تفاصیلی داره کمانیه انتظام معانی آنی متعدده ظاهر بحثای اینه که موافقت انتظامیه وجوبش وجوب شرقی و تنسیفیه و مستلزم مستظمه است مثل سایر تکاریفی که این آثار برش متعدده خود مسلم به جواز مخالفت التظامیه است و تنها چیزی که در محل نظام که توسلیات باشه لازم میدونه حرمت مخالفت عملیه است اگر محل نزاع این باشه یعنی خصوص توسلیات و یا خارج از محل بحث باشه و از یه تعبیرات مصنف دارای اصطلاب کمان که در همین اول مطالب فرموده مخالفته اهده همه مخالفته منحیص و الالتزام اون تعبیر بالایی مخالفته من معلومه اجمالی و, و تصرفر علاوه این طبق تعبیلی که در اول ما با داشته که خود مصنف پایده به اینکه علم فرق نداره تفصیل و اجمال برش آرز میشه. اگر اجمال و تفصیلی هم باشه نسبت به معلومه یعنی حکم معلوم به اجمال؟ نزا علم اجمالی تعبیل نمیمونه معلوم به اجمال و معلوم به تفصیل به خاطر علم همون حقیقتیه بسید که نسبت به موارد تفصیل اجمال ماقیتش فرق نمی کنه و این تشکیل کلامش به بعضی متبدمین خودش و متاخلیدن بعضی هم از عراقی از همین تبایید کردن که یعنی فیل آغازی عراقی توجهیم کردن فرق رو در معلوم به اجمال و معلوم به تفصیل میدونن و علم رو حقیقت واحده بسیطه میدونن ولی در مقابل اینها آغازی ها قاعده نه علم فرق داره علم تفصیلی و علم اجمالی فرق این ها رو گفتیم حالا احد هم و مخالفت هم و الالتظام به عباه فعل او ترک یک مخالفت انتظامی است مثل اینکه به اباهه فعل که مردد بین حرمت و وجوده. اگر ام داره باشه بین وجوب و حرمت که قایل بشیم بهنک نماز جمعه یا حرام یا واجبه ما هر دو رو رقصش کنیم قال به بشیم این نظریه مستلزم مخالفت الگزامی است به این که در موارد دوران امر بین وجوب و حرمت شخص یا فاعل یا تارک اگه فائد باشه موافق وجوده اگه تارک باشه موافق حرمت لذا در دوران امر بین المحضوره و دو قطعه متضاشت مثل وجود و حرمت اگر کسی قاعده به ایباهه بشه این مخالفت لیزامی و مستلزم هیچ مخالفت عملی نمیتونه باشه چون شخص یا قاعدیات هاره و شفق نداره اگر شفق سالسی براشته بشه یعنی از زده باشه که در همان سالس در اون موارد مخالفت عملیه پیش میاد و اگر از زده باشه که لا سالس همان استحرمت و وجود، اونم در یک زمان جانبیه زده تنها مخالفتی که پیش میاد التضامیه است یعنی شخص ملتظه به هیچ کدام از و حرمت نشده قایل به باهی شده که یک حکم صالحیه بنابر تضاد بین احکام که مشهور بین موقع هاست به تضاد احکام تقدیلیه خمسن یعنی تضاد دارم اگر کسی رفت بکنه وجود رو و حرمت رو قاعده به باه بشه قاعد شده به پنجمین حکم و این ضد دو حکم قبلیه تضاق مخالفت کرده ولو در عمل و خارج این شخصی یا قاعده موافق وجود یا تارک مخالف حرمت ولی که در تقدیر شخص مخالفت ازتزامیه کرده قابل التزام به اباحهت فعل مدددن بی‌درحمت به پرهمت وجود مع اتحاد زمان وجود به اگر اتحاد زمان وجود به حرمت باشه یعنی دو تکلیف متضاد در یک زمان نمیتونه ثابت باشه از مواد دوران امینن محدوده میشه ولی اگر در دو زمان باشه وجودش مال امروز حرمتش مال آخرش یا این فعل امروز بر من واجبه یا اون فعل فردا بر من حرامه اگر اتحاد زمانی نباشه دوران هم بین المحضبه نمیتونه باشه ولی اگر ما فرض کردیم وجوب و حرمت در یک زمانه الان یا واجبه یا حرامه در این موارد دو حکم تکلیفی متضاد در یک زمان قابلیت جمع نداره قابلیت جعل نداره اگر کسی قاید شد به اباهه که یک شرق سالس یه میشه در این موارد تنها مخالفتی تصور میشه مخالفت انتظامیه است نه عملیه ولی اگر زمان متحد نباشه اختلاف در زمان داشته باشه در اون موارد نه مخالفت عمدیه هم اتفاق میوفته پنابانی فرض را برده در مواردی که دوران ام بینن محضوعه باشه و دگری چیزی امروز بر من واجبه یا شی دیگری فردا بر من حرامه اون دوران هم بینن محضوره نمیگن اتحاد زمان شرط شده که دوران هم بینن محضوره ما در این موارد شخص یا فاعل یا تارکه هر کدومش باشه شخص اگه قاعد شد به باهر یا فایل یا تارک و هر کدومش انجام بده یعنی یا فیر یا ترکه این با یکی از این دو هست از مخالفت عملیه نمیشه به مخالفت اتضامیه میشه اون هم همینطور احکام خمسه تکلیفیه تضاد دارن فیلم در حقه دوم و حقه اول و حقه سوم بوم شیسته مصروفا بحث کرده در اطرافش قایده این به این که اینا تضاد داره تضادش هم تضاد تکمیلی نیست تضادده در مقام جعله یعنی این اون معیار خاص خودش رو داره ما نمیتونیم بگیم مستحب همون واجبه یا واجب همون مستحبه یا یک وادیه یعنی پنج حکم متضادده مبادیشون فرق داره ملاکاتشون فرق داره لذا شارع یا وجوب رو جعل میکنه یا استحباب رو اینطور نیست که اینا شبیه هم باشن مثل هم باشن لذا نظریه مشهور متقدمین و متأخرین که قائل شدن به اینکه در که روایتی وجود رو نمیتونه اثبات کنه قاعده به احباب بشیم، یه اساسه. یه چیزی وجود رو نتونست نشه کنه، برای چی استدباب میشه؟ چون یا هست یا نیست. اگه هست، وجود اثبات می‌کنه، اگه نیست، چیزی اثبات نمی‌کنه. شهید در شرح زیاد زیاد بهش برخورد کردید به این تعبیر. که قائل به استحباب گراحت میشه برای اینکه مخالفت کلی با نظر وجودی اینها نکنه یعنی برای مخالفت کلی نشه قائل به استحباب میشه یا قائل به گراحت میشه در مقال عدم اثبات وجود و, و حرورت خروجاً به مخالفت مطلقه اینکه مخالفت مطلقه نکنه، مخالفت نسبی کرده باشه. رضا در موارد هم بین موجود و حرمت اگه در یک زمان باشه هم دایر بین محصول اینه در این موارد اگه به بباهی شدی یقینا مخالفت هم از اتفاق نمی چون شخصی یا قایل یا تاره فقط خواهد مخالفت هلکزامیه لازم میاد شما باید یا مفتزم به وجود میشده یا مفتزم به حرمت الان قایل به هیچ کدام نشده به بباهی شده و اباهه در تضاد با دو حکمه ولو جنس وجوب همون اباهه هست چون هر چیزی واجب باشه و یقینات مستبطن است هست ولی شعره اینو اعتبار نکرده وجود به اعتبار کرده شما باید اعتقاد به وجود پیدا کنی نه اعتقاد به اباهه و امثال مثال دوم دو وکره التزام به اباهه موضوع کندی مردد این الوجوب و تحرین مهده میکنه عهده من معین تأخیدی مثال اولی شبهه حکمیه بود عمری دارمدار بین حرمت و وجود این شبهه شبهه موضوعی است. موضوع کلی مردد بین وجود و تحرینه که این رو میگن شبهه موضوعیه نسبت به مثال اول که شمایه هست دو تا مطلب باید مرد نظر باشه و از های اساسی ازام میشه ایشون مثال رو برده روی قسم مثال رو برده روی قسم قائل شده به این چیزی با قسم حرام میشه یا با قسم ناجبی این دو تا مطلب درش هست اینو باید بحث کنیم غیر از اون مطلبی گفتیم در لبارا هم بین محضورین یقین هم قاعد شدن به باقی مخالفت احتضامی میاردیم نظر مشهور دو تا مطلب که از مطالب اساسی به خساب میشن یکی در رابطه با قسم و اهل و نذر اینها وقتی تعلق میگیره به یک فعلی چه اتفاق میابده؟ اختلفت اعلام علاق بوده یعنی ما با نظر و عهد قسم چیزی رو بر خودمون واضح میکنیم بعد از موارد برای خلاصی از مشکلات همسارین ها مردم نذ میکنن حالا درست یا درست نیست کهراحت داره نوبیه این من با نظر و عهد و قسم از زیر بار مشکلات دن بریم به متعدده داره و سریح قاعدش اینه که غللا تا تعقل زول ان حقوق یعنی بر خودتون یه حقی ثابت نکنید به نفر خدا که حتما دو ماه روزه بگیرم یک ماه روزه بگیرم حتما پیاده برم که قلاب میدونم پیاده برم مشهد. یا نمیدونم پاهم ببرم بالا بسیار ساعت همینطور کم به پاهم نرسه و همه خون به سرم جمع بشه تا خوب دیونه بشن لا تطر از لرو و به رو علا نبای این بر مشکلات کنه تا یه مشکل پیش میاد زود آش نز میکنن یا چیزهای دیگه مخصوصا زنها بدون ازم بدون اجازه بدون سیغه مثل هیچ روزه هایی که میگیرم خونه ها <تصفيق> زن هایی رو میارن اونجا خود اولا خورد مردم میدن نه احکام بلدن نه حدیث بلدن نه صحتش نه اعتبارش نه دین نه چیزی دیگه یعنی یه مکافاتی شده ما گرفتاریم منم. تو هر خونه ای زن میاده خاضی میکنه و میدن و زن ها میان میدن همشون هم با قدرده خواست خودشون یه مراسم میده یعنی مراسم باید همه جوان بشت نظر گرفته بشه زنهایی که میخوان مراسم برن آرایش براشون برای چیه حتما قدرشون رو فروز کنم برن یه ساعت قوض بدن رو برگرم و برگر. گرفتاری خیلی الان اینه یا زنهایی که میان افاظه میکنن یا اسلام شناس هن. یا همه چیزی بلدن. احکام که میگن تبقیه چی میگن چرا این شده یا منبر مال اینها نیست اینا بیاید شغلیز یاد میشه مسئله رو میگن دیگه مردم مراجع به آخون نداره خدا میدونه آخون درستان دو فوزه شده ما خیال چیز خوبیه که زنها دارن گرشت میکنن منبر مال زن نیست ما اگه اومدیم بگیم آقا حامله شدن رو بدید به ما مرد ها متکفل بشن سخت بر برا شدنی خلال از خصوصیات ما رو برداشتن و تمام گرفتاریها ز همینا یعنی نااهلش منبر میره منبر مال آخوند الا آخوند هیچ وقعی در جامعه نداره اون کتابی گفتیم صاحب جواهر نوشته برای اینکه مردم مراجعه به آخوند بکنند خودشون نخونن نجات و عباد در نهایت اقلاق حالا یکی از علمه بزرگ شرحش کرده با اینکه شرح شده باز اقلاق داره. برای اینکه مردم مراجعه کنند فقط به آخون هر چیزی رو از مزیده خودمون خارج میکنیم بردمی ما مراجعه نمیشه و هر چیز از دیگران میپرسن کتو شلواریه دارن منبر میرن کتو شلواریه دارن نماز میخونن برای ما چیزی نمونده در شهریه گرفتن جا منتظر ماه تمام بشه شهریه رو بگیر حالا آیندهش خیلی بده آیندهش طبعاتش خیلی بده ما خیال میکنه خوبه زنها به همدلله روشت کردن دارن منبر میرن نباید برن منبر مال زن نیست مال انسان های برزیده قبلا چهل پنجه سال ساتون عجف درس می کندن جوابگوی یک استان بودن الان همینطوری منبرمین تحصیل نداره بود و طبعات منفی هم داره حالا این نظرها در نظرها چه اتفاق می افتن؟ اصفل افتر علام بعضی‌ها میگن ذات اون فعل عوض میشه یعنی یک شی مستحبی واجب میشه نماز شب مستحبیه برای شما واجب میشه روزه سید شهدا علیه السلام مستحب بوده مستحب عکید بوده با نذر واجب میشه و مثال اینه بعضی‌ها قاعده به تغییر در ذاتشن ذات عمل متولد به وجوب میشه یا به حرمت و امثال با عهد و نظر و قسم با فرقهایی که داره یعنی ذاتش میگه متبدل میشه دیگه این عمل مستحقی نیست این اول نمیدونم مباه نیست یا واجب شده یا حرام شده که در تقدیره یه تقدیره در ماهیتش صورت گرفته که جماعت کثیری خواهده به این و بلکه که بیش ادعای کرد مشهور قائل به اینکه این ذاتیه در مقابل مشهور و از یه قائل نه فیل در ماهیت خودش کما و علیه قبلا باقی میمونه مستحب بود الانم مستحب حرام بود الانم حرام مباه بود الانم مباه چیزی درگیبی میکنه منتهایی یک وجوب وفای عنوانی بر سرش متصفی به یک عنوان آرزی میشه شما نظر کرده بودی محرم و سفر رو روزه بگیرید روزه همون استحباب خودش رو داره ولی وجوب وقفا آرز شده برایش یعنی یک عنوان ثانوی پیدا کرده حالا نظر شما کدومه شما قائل به کدومش میشید قائل میشید به اینکه این ذاتیه یا انوانیه ظاهر روایات در باب نظر و عهد و قسم اینه که انوانی چون نصوصی داره که لا تتعرضو و این على النوائم و خودت نباید به تکلف بندازي و خدا دوست نداره شما این کارها رو بکنید و انجام میده بره چیز نظم راجعتnavbar از درس نمیخونن، نذر میکنه پیش درس خونه. مباحثه کن. مباحثه کن، مطالعات گون درس برو، نخواب، نخور. وقت که درست نمیشه. بعد خب نذر و عهد و قسم قسمی از آثار اغه در رابطه با این میخوام بحث کنم، روزها باید بحث کنم. از آثار یعنی کسی نرزی میکنه اعتقاد داشته باشه که میشه واقعا میشه جز اسرار مافوق فقه ماستند اصلا یه چیز مختص به شریعت اسلامه که تبرمورش در ادیان قبلم بوده و هنوز باز نشده کشف نشده یعنی اراده ای انسان اراده ای انسان نفوذ پیدا میکنه به خواست خدا یعنی شما نظم میکنه روزه بگیری فلان مشکل حل بشه همین که اراده یه رو داری حل میشه این جزء اثراره ما واردیم وادی باعدی نمیشه این نیست که بگیم از چیه چرا تغییر میکنم سال نه واقعا جزء اثراره و بحث جدایی میخواد الان ما از نظر فکری میخواد نه ذات اون فعلی که متعلق هست، هاست عوض میشه عوض نمیشه اختلاف علام على قولین و مشهور علب ترمید قائلت من ذاتش عوض میشه نبازشم مستحب بود الان میگه میشه در مقابل مشهور بعضی قائلت میگه یک وجوب وقایی برش آرز میشه لذا جز واجبات انوانیه میدونن مشهور جز واجبات ذاتیه میدونن که باعث وجوب وفا مستحب بود مستحب ذاتی نماز شد ولی واجب به العرزه وجوب از کجا بفا؟ آمد وفای به عهد واجبه وفای به نذر یوفو به نفس میاره دیگه در مواردی که قاعده مشهور میکن به ذاتش تعلق میگیره یعنی نماز شب قبلا مستحب بود شما که نرز کردیم دیگه واجب شد واجب شد شما هر روز که داری روزه رو ترکش میکنی واجبهای متعددی رو داری ترک میکنی به هر کدومش کفت تعلق تنبقی و اگر به وجوب وفای به عهد باشه فقط شما یک سال روزه نز کرده بودی هیچ کدامش نگرفتی ده تا مسکین رو تمام بده و تمام میشه بله بله قایل هم دیگه به انحلال هم قائل به انحلال هم یعنی میگن منحل میشه مثل روزه و انسانی هم منحل میشه به هر کدوم از اینها یک کفاره ترده شون به زاد تعلق گرفته بود و ذات امروز با ذات فردا و ذات اون یکی فرق داشت متعدد بودم منحل بود شما اگه شست روز روزه رو نگیج 60 تا کفاره باید بدی 60 تا کفاره که کفاراتش به ترتیب به تخیر و هر چی ولی یک بنا بر نظریه انوان که شما یک سال یا ده سال روزه نز کرده بودید و هیچ کدامشو نگرفتی یا نتونستی کفاره باید بدید در این موارد یک کفاره تعلق میگیره که اینکه به نظره وفا نکردی حنس نظر شده نه حنس متعلق تعلق و به اختلافیه اینا اگه شما بخواید نظر بدید باید بدید روی چه مبناییه که وقتای اول هر نامی مستانده راه بده هر میخوام بگیم, من بگیم. اگه از شما بخوردن کسی به نظرش وفا نکرده چیار باید بکنم ما فتواهی آقای میخوام بگیم نظر مشهور و قیل مشهور اسمم نمیاره نظریات خیلی رو میدونم بگه اسم نمیاره نمیاره نمیاره ما اونو خود دوتا نظریه امده رو دو تا نظریه امده نظری است اگه ذاتش عوض بشه کفارات فاراد متعدد میشه و قد نست علیه شهید الاول در قواعد و فرائد اگر به ذاتش تعلق بگیره به تعدد اسفاق مسببات متعدد میشه و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات برای هر روزش یعنی عدل قاعده باید این بگن عدل قاعده باید این طور باشه دیگه چون ذاتش عوض شده ذات روز یه با ذات فردا شما نزد کرده بودی که سه روز روزه بگیری و نگرفتیم برای هر روزش باید باشه چون به ذاتش تعلق گرفته نه به اینو کفاره متعدد میشه ولی بنابرا قول غیر مشهور که انوانیه شما تمامشم عمل نکنی یک انس نظره و خلف عهد و قسم و این هاست کفاره دیگه متعدد نمیشه علم قاعده این از نظر کبری که وقتی این عناوین سانویه آرز میشه یا ذات تغییر میده یا نه یک انوان الزامی رو آرز میکنه بر اینها ذات در همون ذات قبلش باقیه یک وجوب به وفایی اومده بود که شما بهش عمل نکردی و آثاری برش مترتبه از سر تکیفیش حرمت چرا وفا نکردی به نزد یه حرام انجام دادی؟ بلا شرسی رو روزه نگرفتی محرم و سفر رو باید روزه میگرفتی با نه نگرفتی و یک اثر وضعی برش متبطه میشه که کفار هست حالا کدوم میکرد این دو نظریه روی شما میپزندیم؟ از نصوصم چیزی خیلی از این مقدار در یا که آیا ما قول اول رو بپذیریم یا قول دوم رو بپذیریم داره یه انوان زده بود من شرط داشتم یعنی تداخل از ادم تداخل از و مسبب داره کدام کدوم نظریت میپسندید نظر و و هم که میاد شما به عنوان فقهای های مواصف چی مخواید بگید بعد ببچه میده از خارجم نداره ببچه به کفایه هم نداره کفایه هم, کفای هم بخونید این, این باب رو در باب اجتماع امرونه باید بحث میکردن ولی بحث نشده. هیچ کدام از رو بحث نکرده باید بحث بشه بحث نشده ایضا بعدا هم شما این بحث رو نمی‌بینید ولی از نظر فتوایی نیاز به نظر داره شما قایل میشید به اینکه نذر و عهد و قسم تغییر در ذات میده شاره از احکام خودش صرف نظر می‌کنه یک الزامی رو برای اینها میاره یا نه احکام شاره دایم با نظر یک حکم الزامی عرضی ثانوی که وجود وفای به نظر و قسم باشه میاد چیزی را تغییر نمیده؟ آیا حکم ذاتیه یا حکم انوانیه؟ به که موضوع محدد از اینجا اگه موضوع معدد قرار بده، حکم ذاتی قرار داده، اما اگه موضوع در خودش به اون خاطر ظاهر نصوص این که قول دوم که بر خلاف مشهوره قوی است. انسانیه. قول دوم نمیگه، ممکن است بس به خود داره که چجوری مورد لحاظ کذ. یه موضوعی تعبدی مشخص در نظرش بوده، حکمش چه نه شعاره چیزی نگفتی که شاره اینا رو بیدید تشکیش کرده نذر و عهد و قسم رو تشکی کرده برموده که شما بگید لله علی یک چیزی بر شما ثابت میشه وجوبی بر شما میاد الزامی بر شما میاد این الزام الزام انوانی یا ذاتی دیگه اونو نداره نماز شب خودش واجب میشه یا نه خودش باز ما این ها رو هستان دیدن نظر امام خب برخلاف مشهور قاعده به این که نماز شب بر باقی میمونه و یک وجوب وفا برش نیاد ولی خب متاسفانه خیلی از شرا متعبض این قسمتش نشدن مثل مرموه مشکین اینا این مبانی مشخص بشه در شهرها که وقتی شخصی چیزی رو نرزم میکنه قسم میخوره عهد میبنده که ودیوب وقتها فقط میاد یا ذات حوض میشه متعوض مبانیش نشدن اون کار دارم بخونه چیز متحصی نمیشه مخالف اصلیه در مشهور نظر امامه خب اینه کدومش رو ما میپذیرید انوانی باشه یا ذاتی باشه ممتونم. حالا مشهور قایل هم دلیل ندارم اصلا دلیل ندارم باب عهد و نذ و قسمین از ابواب اخره کتابهای فقهی به بررسی های شایسته اینها و, این و بایز در سن رسیدن مونده همینطور چی بگیم بگید ذاتی یا ایمانی تو شما با بایساتون اینا رو پیگیری کنین باشه در ضمن در یادیت میخوان در چه موادی ذاتی از ایمانی یا موضوعی یا تمبانی خب اول در مقام استظهار از نصوص و اینهایم نه که نه از نصوص چی در میاد. نه ولی خب من گفتم که ظاهر روایات بابشت رو نگاه کنید ظاهرش همینه انوانیته امام فرموده مثلا زیادم از که خیلی اونطور نیست که شار بیاد تغییر ماهیتی در این احکام بده و قائل به تغییر بشه نه تازه نه نفیشون کرده قائل به کراحت شده کسی یک ای الزام ای اینطوری بیاره برگردن خودش لذا قول به اینکه تنها وجود و وفا برش میاد یک قول قمیه حالا باز نظر شما منتبه از شما نظر میخوام. ما اینجا هم فتاوانی ما اینجا مبانی رو میخوانیم نظر شما چیه؟ اون خیلی مهمه. یعنی شما وقتی برمیگردید ظهر به خونه به نظر رسیده باشید تو نباشید صبح که اومددی نمیدونستید ظهرم که برمیگردین نهارو میخورین چیزی نمیدون آقایون باید برمیگردن خونه یک مبنایی حداقل به دستشون اومده باشه. با فکره شما تصورتون چیه؟ و گفتم فکر ما مبتنی بر ذهنگیات فقا ذهنیت ها چیه خیلی از روایات رو بلی به دست آقای خویی یه برداشت داره همون روایات رو به دست شهید سر بدی یه برداشت دیگه داره چون ذهنیت ها فرق و دلالت ظاهریش عرفیش سندش همش معلومه اینکه میان بعضی ممون آقا سندی میکنن دلاله میکنن برای اینکه به اون ذهنیت خودشون برسن و الا چیزی غیر از ذهنیت کار نیست. از ذهنیت ها باید به این طرف صبح پیدا کنه که شما تشخیص بدید خودتون انوانی میدونید یا ذاتی میدونید لذا اگر انوانی باشه در موارد تعلق علم اجمالی خب احد و ثابت میشه یک عنوان ثابت میشه یه شخصی نمیدونه نظرش چی بوده آیا روزه بوده یا نماز بوده مخیر بنابراین احتیاط نداره چون انوانیه ولی اگر کسی مثل مشهور قائل شد به چیزی ثابت نمیشه در موارد تردد چیزی ثابت نمیشه من نمیدونم روزه نهاز کرده بودم یا نماز شم بنابراین مستقی مشهور چیزی ثابت نمیشه بنابر مستقی مقابل مشهور احد و ثابت میشه ما مبانی داریم بردسید نه نه یاوردن ایشون نه یا شما انشاءالله تو کتاباتون بنویسید فرقارو اشتاق بیشتر باشه خب پروهات اضافه میشه برش دیگه اشتاق میخوان در همه های در سایر درس هایی ما کفایی ما رو تدبرو میخوانم مشتفه باشه مثل این شراخ های را شکتا که میزنم به خیابون روشنش کنن یه اینطور چیزی میخواییم نه یه لامپای 20 که چشم خود جمعی می ده. یه مبنایی داشته باشید به کل فقهتون بتابه تابه باید تشخیص بدید چیزی می یه مقدم مؤخره نداره اگر نیستی بیاد بگه نه موخراتی داره مقدماتی داشته خب این اقرائه به زعفه یعنی ما طلبها رو به طرف زعف سوق داریم وقت طلب رو برگیم ولی باقیت هم همینه که این نه مؤخرهی داره نه مقدمهی داشته هیچی نمیخواد غیر از ذهنیت پیدا کردن شما در همین جلس ها که شما قاعده به انوانی میشید یا قاعده به ذاتی میشید اگر قاعده به ذاتی بشید در موارد علم اجمادی به اهده ما نظر اصلا ثابت نمیشه ولی اگر انوانی باشه اهده ما یه ثابت میشه وقتی اهده ما بعضی از موارد میگن ما قضا نرز کردیم باید قضا بدیم؟ چون اینوانیه مهم چون ده ست گرفی برای به یک نفر باش به دو نفر لازم میشه هم صدا دارابه بندازیم مداره کذا بیاریم منبری از مشهد بیاریم از تهران اینا رو می نویسن که مردم از مشهد اومده یا تهران اومده نه چیه مردم گرفتاره چیه الفاظ معانی نیست معانی رفته الفاظ مونده حالا مدار میخواد از مشهد میخواد از کوریجون رو بیاد فرحی نه اصلا مدای اینا از اون مسیر خودش دارن خارج میشه کم کم این تو نباید باشه به سر و که نیست یه قضا میخوان بدن شیش سانت سیره سینه بزن. باها این دو کیلو گوشت میخواد آقا بعدن این ترمین بشه مسابقه دو بزنن که بهتر بیان یعنی آقا از اینجا تا تهران بدوینن اونجا قضا می روزو می نداره ما شیش ساعت نتاهایی متعدد آقا از شیش بعد از ظهر تا ده شب نفت میدم آخر آقا روزی میخوام مایه بخوام بدن تب. نباید باشه اینا یعنی خلوص از بین می بره قضا می اولش غذا رو بده بخورم پاشم برم کسی خواست بشینی کسی نخواست نشینی ما به خاطر قضا مردم بیاریم جمع کنیم این اصلا تاثیر نداره جلسان میخواد یک نفره باشه میخواد یک میلیون نفره باشه چه فرقی داره تعظیم شعار به این نیست بزنی این انحراف خیلی داره و این داره باید منبری ها بگه منبری ها بگه, بگه ما اول بدید چرا آخر می دید که خاص به خاطر خدا بشینی نخواست باشه بره هلا آره شما انوانی بدونید یا ذاتی بدونید تأثیر داره هم در تعدد کفالاتش هم در اینکه در موارد مردد و علم اجمالی چیزی ثابت میشه یا ثابت نمیشه اگر قائل شدیم به اینکه انوانیه در تمام موارد صدق عرفی کافیه اگر کسی گفت نز کردم به اینکه یه پولی بدم فرق نداری میخواد هزار توم هم بده میخواد یه بده. بنابراین در موارد تردد به این مجمالی حکم آزه میشه اگه ذاتی هستید مثل مشهور چیزی ثابت نباید بشه اگر انوانی باشید کم اول و الأقرار و صدقی یا به نظر خودتون یا به تشخیص خودتون ثابت میشه ذاتی یعنی آره، بعد مثل جنابت اگه ذاتی باشه از اون نپیچید. حالا کدومشه؟ فکر کنید تو مبارزات اینا پیگیری کنید. معلوم باشه بعد 갑자기 گفتن یه منهاجی، یه تحلیلی، یه گیر بیارید، نظریاتی که در مباحثات پیدا کنید به عنوان تعلیقه در اطرافش بنویسید. که نظر قاصر شما به کجا رسیده؟ خیلی مهم؟ <تص> اینا جده از داده نظر قاصر یعنی مال دیگران قاصره مال ما نیست از داده. ازداد الاحقر ای الاعل من یادم میاد از مرحوم آقای عراکی پرسیدم قدیسی بود از قدیسان عالم یعنی مردم از چه چیزهایی محروم میشن در وصفش زبان نمیچرخه من از ایشون پرسیدم اله که می نویزن چون به ازش گرفتم اله احقر معناش چیه فهمون دهی بعد خب اون موقع نه موبایلی بود نه فیلم برداری بود نه بود فقط صفایی که داشت بنابراین خیلی معناش فهم میکنه از نظر قاصر میبینیم یا یعنی نظر علمی خودتون، عقوای خودتون. به این نظریات خلاصه برسید، به بابش هم نگاه کنید، بعضی از موارد این نکات میبینید، مثل همین قسمت‌های و فقراتی که داره لا نتعوذ ولل حقوق مفسر و نظرها نظرها باید متواثق باشه. من یه نکته‌ای محصل همه این بعضی از نظرها تأثیرش خیلی قویه. بعضی از نذرها تأثیر آن چنانی نداره. این هم لازم آقایم بدونم بعضی از نذرو که بگیرم میگن من چیکار کنم و لقمه بدم و غذا بدم. اینا خوبه، خیلی خوبه من میگم نظر از اسراره. ولی بعضی از چیزها در روایات داریم در مصائب شیعه که جزء از اصلا زیارت امام حسین علیه السلام تهد توزون و بند ازام بعض از که هیچ راهی برای بخشش نداره این راهش و یکی از چیزهایی در همین ردفت کشف کرب از مکروبینه انسانها گرفتار یه شخص خیلی گرفتاره یا زندانی های خیلی بینه و بی آدمی ندارم کسی نداره شما تا حالا شدیم ملاقات زندانی هایی هیچ این به شما نداره ولی من رفتم خیلی خود یه صفحایی دیگه داره اونایی که اصلا این کسی دنبالشون نمیره یا این تیمارستان ها رفتید تا حالا. چه در قم که حالا مال تهران مال قم خیلی چیز نیست ولی مال تهران چه که احریزگش چه امین آبادش. انسان که کنجا دارم میچرخن این خدا چه نعمت‌هایی به ما داده و اونا محروم هم. کشف کرب از مکروبین و از یک گرفتاری ها رو انسان حل بکنه به اندازه هزار سال جلو میفته ما خیال نکنم فقط به روز گرفتن و به قضا دادن این ها خیلی خوبه جز اسراره، ولی این در رتبه که تنفیس کرد در روایات اومده یا منفست گروب در بعضی از اصاب حضرت اول فضل داره در رابطه با امام حسین حضرت السلام داره. که تنفیس کرده یعنی یه مشکلی از کانواده حلش کنه اینها اینم تهت و زنوبه بزن. گناهی داره که اصلا بخشیده نمیشه این یکی از راهشه خیلی مهمه. بعضی از موارد میبینید هست، خیلی البته شما در فامیل دوستاتون می‌بینی هست، گرفتاریایی هست که دیگران حل نمیکنن ما فن حل نمی بلکه نمیذارن حد بشه. نمیذارن. سال 66 بود، ما تو بسیج مسجدمون، خب پیگیر یه قضیه بودیم، راجع نمی‌ذاشتن. سنگ میکردن جلساتی که به زور اینا رو ما تشکیل میدادیم به هم میزدن این نشد هفته بردش سخه اول نمازی ماهات هم بودن یعنی شیاطین هم به صورت انس هم به صورت جن جنش در نفس بس, بس میکنه انسش هم رفقای خارجی میگن این کارو نکن که میگن نه آقا ما نمیتونیم بیا استخاره میکنه استخاره برد میهن این خیلی مهمه یعنی به فقراتی در نصوص برخورد میکنه اینها رو بالای من ها به مردم بگیر که لا تتا افرازون الحبوم وسبه رو ادم به مشکلات انسان رو سر کنه اگه مشکلات به انسان از انسان بگیرن انسان دیگه ساخته نمیشه و مطالب دیگه این یک مطلب در رابطه با حلفیج اومده ذاتش و انوانش رو آقای تحقیق کنن تحتیل کنید به این معنا که به لغبش برسید یکیش اتخاذ کنید یا انوانی باشید یا ذاتیه همین امروز بنویسید ما قایل به ذاتی هستیم قایل به انوانی هستیم وفاقند مشروعی یا وفاقند سید الامام و امثال اینا بنویسید نه خیلی خوبه نظر پیدا کنید مسئله دوم اینه که شاره این بیچاره این برای موارد نذر و عهد و قسم نه تنها موضوعی معدد نکرده تا که شما می کار نکنید. چه شر اوره، من وقتی یه مسئله نشون همین یه مسئله، من دارم میگم موضوع نه تنها تهدید از نظر اشاره که بگی اینطور ناز نکنید اونطور ناز نکنید نه. بلکه گفتست نظر و عهد قسم نرسید کنار یعنی موضوع اصلا میگه برداری. تهدید نشده که هیچ. تازه داره نفیش میکنه. لسان لسان نفیه. بابش تو من داشتم صبح نگاه میکردم یعنی قالب روایتش اینطوریه و اگر کسی غالب بدونی یه سمره یه ماخداره اگر کسی به ذاتیت مشهور باشه باید به تعدد کفارات باشه و دم یه بهی عقل حسور هر جز دلیه که نفسیه کل جمله میکنه بله, بله. خب بله. بعضی از موارد التفات نبوده اتفاق نبوده اینا قایل شدن این وقتی من نظم کنم ماهیت نماز شب از استحباب به وجوب تغییر پیدا میشه ذاتی. عنوان وجوب و وفا برش نمیاد. خود مستحب میشه واجب قدعص به المستحب مستحب در خیلی از تعبیرات میبینید همین تعبیرون که مستحب میشه بازی برای هر انحلال پیدا میکنه ببین فقها ها به حاله هم هستن هر روزش همون کفاره رو داره هر روزشون کفاره رو داره و اینا تمراتی که بعضی متعرضن بعضیا متعرض نشدن ولی نتونستن علامه در بعضی از کتبش نسبت به تعدد کفارات اشکال داره و از یه از مواردم توقف کرده به خاطر همین مال چون اگه کسی قائل به این بشه که مشهور خودشون قائل به این هلالن هر دوی که فاره چون به ذات میگن اسم عنوان نمیاد چی داره متعلق قسم کفاره داره مشهور میگن متعلق قسم کفاره داره مقابل مشهور مثل امام قائلن به اینکه خود قسم کفاره داره و کل تقدیرین شاید بیان قاصره ولی هم فرصت کنه همی که دیچ کار کنی این نمیشه بقیه نواقص انشالله خودتون تکنی کنی اصلینه که روشن باشه کدا خودون راه رو میخواید برید راه ذات رو میخواید برید یا اینوان متعلق کفارات و نزورات اینها کفاره داره یا نه خودش ب گفتیم ظاهر نصوص نه که انا عنوانی شارع نه تنها تهدید موضوع نکرده بلکه نافی اصل موضوعشه این خودش یه لسانه لسان ه نکنید این کارها رو حالا بعضی از روایاتش خیلی طولانیه نهی کرده امام علیه السلام که چرا اینجا بر خد بشفقت درست میکنه که من هر روز میخوام این کار انجام بدم نگفتم نگفتم قسن ف مصمم باشم گفتم که مسمم گفتي باشم اشکال نداره ولي نکنید این کارها رو که من هر روز هزار رکت نماز بخونم نمیشه حالا ابوابش یه مراجعه اجمالی بکنید بعضی از فقراتش هم ورد مثل لا تعوذ بالحقوق و استغفر الله نبویت من خودش ده تا منبر میشه بگید به مردم مردم این به اسلام گرایش پیدا کنن اون همین در یکی از روایات اومده یکی از روایات متعوض همونه ما ساحت معصومی جدا دار اون عمره به ما هاست معصومین حسابشون با ما جدا <تصفح> میشه بکیم به مناسبات و که موضوع کسی بیاد بگه در مواردی که تکلدخ بیاره میشه چون بعضی از روایات هم تکلدخ رو داره ولی ما حساب خودمون با قسومون نه اونا نرسیدن